خب این غزل نهلا نمیدونم دوستان میدونن نمیدونن و هر حال چشم اگه دلتون بخواد من حرفی ندارم حالا بعد این غزل تمام شدم بخوادی راجب جشم میردانم با کمال جم دوستان با انداخت مخوند بله، ارس نمسین، غزالف از 46 بود، ساخیر باده از این دست به جام اندازد، عارفان دا همه در شرم مدام اندازد، ور چنین زیر خم زلط نهدنانه خال، ای دست ها، مرد خیرد را که به جام اندازد، این دوتا رو مثل اینکه گفتیم، ولی؟ ای خوشا، حالت آن منست که در پای حریف، سر و دستار نداند که گناه من داده ای به دا اون الف هر جش علامت نداست ای خدا بسی که طرف خطاب آدم قرار میشه حرف نداست الف آخر اسلام که در میاد اونم حرف نداست خدایا ملکا مالک او ذکر تویی که تو فاتیه خدایی وافر شید خدا میخوندین و قشنگ بود صبح بازوش تقدایی سر شنایی است تازه چه تو میگم که تو فاتیه خدای ما روند و همان راه که هم راهنمایی و دوره بچه‌گیمون ما به یاد بدیم اصلا که ملک را شاه خدایا علف نداه ولی اینا دوتاش با هم نمیاد میگن ای خدا یا خدا یا ای خدا یا نمیگن ای شاه ها نمیگن یکی یا اون میاد یا اون اینجا داریم ای خوش این ظاهراً حرف ندا نیست حرف تحکید یعنی خوش به حال اون خیلی خوش برای اینکه محکم بکنه هر کشتو یعنی چقدر خوش است حال اون نستی که وقتی میخواد به حریفش چیزی تقدیم کنه نمیشنه که این سرشه یا دستارشه یعنی اون چیزی که به سر میبنه حالا عمامه را نیشه گفت ولی توجه رو فرمه که بیشتر مردم یه چیزی دور سرشونی زرستن الان عمله هایی هستن بشاره ها زابول از زابول میکنن 300% 3000 کلومتر 2000 کلومتر را میاد گردان نجا عملگی میکنه این یه چیزی دور سرش بسته یک مونستفید این صفرهش هست زیرش میبزه میخوابه روش می به جای شمت نوم هزار دور از این میکنه اینوش میگن بستار این آخوند که میسه این درش می اون که چند به سرشون بشم میگن بستار و معمولا مردم دستار داشتن فقط اعیان و کسانی که کار دولتی داشتن و همثال اینا کل اهلی سرشون میگه راستان رستم و تهرات، به دست این که تو رستم به شهر سمنگان رسید خبرزوه و شیره بلینکان رسید پردیره شدندش، بزرگان و شاه کسی خوب سر برنهادی کلاه یعنی احیان شهر اما باین استقبالش کلا آلا این سرخال و چرخال و مردم حادی سرشون نمیذاشتن تا این اواخر هم همه مردم یه چیزی دور سرشونی بستن بر خود تهران و مثلا تاجرا هموامه شیشیکری تارشونی یه پارچه محصوصی بود که نشون میداد اینجور سمت تاجره یا کسان دیگه هم دور و یه سیلی بود که تا, تا سالای بعد از شهری بره بیستم بود این نونگا بود اصلاً تبریزی هم آدم و آدم قطبولاً دید. این ها این نوبا بود اصلا. نمیدونم سواد، اصلا داشت یا سوادم نداشت. یا داشت سواد جزئی داشت همه این امامه داشت و اوا داشت و, و, و, و فکر کردیم مثلا مجرس الاسلام یا برا خودش. خیلی هم سختش بود امامهش رو برداره وقتی به رضا شاید. ها کسانی که حال اینکار نیستان امامهش رو بردارن. ولی این نراحت می که همه ها را را رو از اینکه بکرده این اون که اون, اون دیگه همین اسطلاح را که کلا گذاشتن و کلا برداشتن هر دو معنی گل بادن دیگه برای اینکه همین دیگه یا کلا های رو را بردارن که ولی میگنیم چیز را بردارن میره کلا گذاشتن سرش هم برای که کلا دوزخ می روزم کلا بخری باید می کند کلا رو سر تا بذره حالا تنگ بود گشاد باید تنگ بود ایز آف خوب می شود گشاد گشاد بود یا جمع شرح می یه جوری اینه که کلا سر کسی گذاشتم و بر اینه فرید بزنش. حالا کلا نیست اینکه دستاره می گه خوش به حالت اون مسکی که در پایه حریدش نمی دونی سر رو بیاند و یه دستار یعنی اینقدر از بود حالا این رو اگر به معنی مستی به معنی مستی عادی مستی از آب انگور بگیری خب حالت خوشیه شوالا می‌رسیم که احتمال این هست که همین مستی آب انگور باشه اگر به اون معنی جزبه الهی هم گیرید بازم یعنی به کنال جزبه الهی که خب خیلی خیلی اونم مهمه اگر برای کسی سر و دستار یعنی سرانوش می که این یعنی سر یا دستار را از شدت بیخوبی که ها هم حافظ این حالات شدت مستی اشاره کرده میگه مست پن کنن چنان که ندانند زد بیخوبی در عرفه خیال که آمد کدام را یک چیگه روز در کسب هنر کن اینجا این دستوره که میگه شب خوردن روز خوب نیست دل و سیاسته. بنابراین این اگر می عارفانه بشه که شب روز نداره نهی عرفانی که از جذب الهی یا نشستن برای اینکه که بر دل نشستن که از آلم قید یک گوشایشی حاصل بشه این روز شب نبره بنابراین این که میگه که روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز دلشون چون نه در زنگ ظلم اندازد دل حاینه وشه تو رو میکنه میخوردن روز بر اون که روز آدم باید به کار جدی فضاله هر کاری کاسبه باید تصدش برسه محسل باید درش برسه عالمه باید تحلیلش برسه و هر حال روز رو در مستی سفری کردن نشون اینه اون روز رو که کرده و این کار خوب نیست دلشون های نرست یه می یعنی کنه چهی وقت هم زمان وقت می صوبروگ هست می صوبروگ صوبروگ صفتی برای می مرکب هم هست. مرکب هست. مرکب هست. یعنی می جه مثل وقت می صوبروگ هست شب گرد خرگاه افق خرگه شام اندازد فرنگی که این دارم یه حفی یعنی این ساعت ورد میشه میخور ورد این از که میگه وقت نیسو فروت وقتی که شب خرگه شام رو بیاندازه به دور خرگاه افق راجب خرگاه قبلن حفظ داده بودن حالا مختصر میگم میدونید که وقتی باشدار این وقته یا ایلاد و که تمام سمبگیشون در بیافونه چادر دارن دیگه همشون خیمه دارن یا چادر دارن ولی اون رئیس ایل سراپرده داره برا یعنی منزل پردن یه پاکی سراپرده چادر از این چندین نفر باید این سرفا کردن با سنابهای متعدد میگفتن سوشن مثل دیوار تی جی میکشتن اتاق پذنیدهایی داشت اتاق خواب داشت اتاق نشریمند داشت تحصیم میشد به جاهایی و تحصیم بود دیگه این رو اگرم خرگاه بدیم خر مثل یه بار گفتن خر اگه بسید تفتیات به معنی بزرگه پاس بهش میگن خردت باف یعنی مرغابی باف یعنی اوردک مرغابی ها خرده یعنی خالص مرغابی بودو خر پوشته یعنی پوشه‌ی بودو هر کنم که خر دور خرطون خرطون نمیدونم چه شیل بود با اینا خلاصه پیدا اگر اسم باشه اسم اون حیبانه که اون حیبان هم اسمش اولاق نیست اولاق کلمه مغولیس به معنی وسیله هملو نقل وسیله هملو نقل یعنی حمل هملو بارا اولاق میگه که مثلا تو جامعه تاریخ وشیدی میگه که پلان امیر دستی داده بود های مردم رو به اولاق میگرفتن یعنی اصبای مردم میگرفتن دوست بار میشهد و منشان میگوردن نا چون بیشتر خر کارش بار بردن بوده تا هنده نقل آدن خر رو بشکستن اولاق ولی مثلا شما در تمام سعدی یه بر اولاق تو که کنیم جه خر رو تا بردید اولاق اصلا نیستی سعدی مسکین خر اگر چه بیتنیزه چون بار همی کشت از دابان و خران بار بردار بهزادانیان مردم هستید بلا خیلی جدیده به خط مخلی خر اگه اسم بشه معنی اون حیدون معروفه اگه صفت بشه معنی بزرگ و بسیار و زیاد و میکشه. خرگاه یعنی برافت روز خیمه و خرگاه خیمه تو خواهر مردوم ما دیگه معنی نمندم مثلا اگر به اون معنی بگیریم هم معنیش درست بله بله اون امکان هم وجود داره باله برای اینکه بالاخره زیادشون داشتم ما اون فراموش می‌کنیم این مسئله راست یه آدمی بوده و عین منو شما اینو همه یه روزنامه گفتن پیغمبر اکم مثل از قول خدا میگه به مرزم میگه بهشون بگو که من یه پشری از هم مثل شما فقط به من وحی میگه یعنی من ارتباط دارم و این ارتباط هم خیلی ساده مغزش یه جوری داشت حالا خودش خانه شده من که نبیدیم اگه خیلی دیارم حالا که انکار داشته باشه خود پیغمبر خانه بوده که این تیام از عالمی خیلی میگه سلاغو وزیسته در این ادباط ولی میگونم باشر دیگری مثل مثل دنس شماهایی دید بخور چند میگه میگه گهی بالی محله نپرداختی و گاه با حفظ و زیمت بستن یه وقتی بر یه حالی بود که جز خدا هیچ کسه دیگری اطلاح همدم و هم نفس و اکشم نبود یا عدیس درینگلی محله وقتون لا یاسا اونیه که یه اون مغربون و لا نه پنجون مرسل میگه من با خدا یه اوقاتی دارم در اون هیچ فرشته‌ای نزدیک به خدا و هیچ نبی و مرسلی در اون در اون مقام نمی گنجد یعنی اختصاصا که یام گفت اون که عالم که گفت عالم مسیح گفتش آمدی کلمینی یا حمیره میذیدی ما از که از زمان هر حرف بزن کلمینی تا کلان کن و همین میران ایران سربت کوچ بود هویشا رو می گفته حال اینا همه شون گفتن آ آدم هستیم نیست او ح همینطور سات هم همین اپلاتون هم همینطور نه بعد این شرای آسمانی رو می بینید یادمون میره آ این بچه به موورشز بود. این که یک خراب می شود که خونهش می بعد بوده که شده راه که بعد دارم بچه بگید یهر زده نمیم دونم یکی وزور بعد مکتب رفته احیان از بالاش <سؤال> کردن که اماده بالا بعد جوون بوده جوونی در حدود حالا یک تفتهی جرا رفته که نبود یک آزنگ مثل کاغی آدم. اگه هم از این احوالمون نمی‌دیده این نقصش بودی. نه کمالی بود و هر کسی که تو دنیا اومده باز تظاهر کردن چه کرده. هر کسی که ما می داریم می‌شه، اون چنکی میگه. ولی خب بعدن به مراحل سؤالی بگیم که خوجا فرید اولین که حرف زد مست در ایران چشمش تو اون غبون واسش میگفتن داره, می داره خونه‌اش می خیام های اینجا نتونم خیام یکی من بینوی نا بیستن نتونم بیباده کشید بارتن یا کشید بارتن از دوش دوست من بنده آن دمم که ساقی روید یک جامعه دیگر بگیرم. من نتونم خب اگه خیام اینجور که خیان نمیشد میگن متبل و تفتازانی رو یک است به این قطعه به قطعه این برادیست حضور در حدود 200 پر 250 برادی این 400-300 چطور به عربي اینو در نیشابور یه بار در خیان خوندن رد در اصفهان حقریش گرد نوشتن یک چند مورد توچلو اصطلاف یه همچیز به هم بعد این عالم ریاضی بزرگ صحبت این هست که بر هموام یه طفیب با حاکم شرط اون حاکم آدم فاضری بوده ولی سردیسون که همون بودن لانگ بست بودن کتاب آدم لفت سر یه آیه یه معنی یه آیه یه اختلاف کنیشه خیام اتفاقا در گرفت نمید تو، وقتی مید تو. اون که میگه علل خبیره فقطنا و یعنی به آدم صاحب خبری برکوردیم این میتونه به ما آقایی بعد میان میگن میگه, میگه بر اختلاف بریم سر این آیه من میگم اینجوره اینجوره من اینجوری میخونم اون اینجوری میخونم شما چی میگیم؟ میگه خیام آیه خون تمام رجوع اختلاف آیه رو قراحت خون که نمیدونم آسن اینطوری میگه نمیدونم عبدالله و مسعود اینجوری میگه کسایی اینجوری میگه همه همه گره رو هر کدوم داردشون را جدا جدا گفت بعدم گفتش که به نظر من این وجه از همه بهتر نظر خودی که میگه که اون حاکم را سبابند امثال تو روز کنه ما تصفیل نمی‌گردیم که هیچ مغری، یعنی کسی که شکلش اصلا و تخصصش قراحه‌ه اینقدر مثالت بشه به این تخصیص که به شکر حکیم ریاضیتی این اگه هر شخص کلاکش می‌شود و وقتش می‌گیستن می‌مارن داره خونه‌ش می‌گفتن جامعی‌گردی بیرون، من نتانم، خیام نمی‌شود حفظ نمی‌شود، این طبول ولی خب، اگر هم از اون بار نکشیده بود، اونم که می باء سوال ما در مورد اون مقاله دیدم که در مورد تفاوت‌های کاذب بود. در ساعر عرضی عرض می که توپا می که هنر اصلی آفظی ها میده. یعنی شما رو به خیال می که اینه یا اونه این کارش اصلا می و اصلا هنر اگه ابحام ندشت باشه هنر نیم باید یه مقداری هم خاننده درش شریف باشه خوب می که چیم ده که عرق خوره بگاه عرق خوف روی این نداریم حالا یک دیگه نه آه هیچ آخون بگیم این نداریم هم بز، بز. این است، که این که بشه دو وجه در یک شعرش گفت این بشه بشه. که شما به دلیل خباسات که هست همش متماهل که دیگه نخل اون نیست داره نه هست کشم روز در که میخوردن روز دلشون آینه در زنگ ظلم آمداز اینجا مستی عشق نیست بر سر که تو مسته اندیش اونم داره روز در کسم اونر کوشت و میخوردن روز دلشون آوینه در زنگ ظلم اندازد آن زمان وقتمه صبح درونه از شب گرد خرگاه افق پرده شانده این افق رویمه آلم رو میگه یه خرگاه و تاریکی رویمه یه پرده که اندخواد دوره هست <تصفيق> یعنی <تصفيق> مثل صبح پرده میگه مثل به صورت روشنی ده ده خام که این کار میو جمع کند پخته گردد تو نظر بر نور خام اندازد خام کدونه میر پخته از کنم که این مطلب خیلی مطلب مهمی. در مدت ها خود بنده ما اتماعبود کن که این چیه و قضیات چه خراده مطلب این است که در مرتب عبدالحنیفه با اگر شراب جوشیده باشه حرام می، نجتن می، حالا اون همون جه بنده همون تحمل شد بند سالیان درست بکنم که این نیزیده چیه برای اینکه که شراب بزن به دوچه بر هشتاد درجه نیزیده که دوستیده همه همه الکولش میده یه چیزم روزاخراتی نیمونه که اصلا همه نداره و این قابل خوبه نیست. خواهدن که یکی باید بشه قول اینا یعنی سلسان بشه حالا سوزیر بر شهر این مسئله هست و اگر شیریهی یعنی اون چیزی که میتونه تبدیل و حلقل و شرف بشه به جوش کننش نجستی ها رنگی رو بیگیرین میخوان پس بود که شیره درست خفتن سکر شیره هلورده این گفتن سابق هم شیره شیده ی انگور انقال آقا نبود برای اینکه که قند از روسیه می اومد بود انگور و از چون بسیده هم رو نقمه انگور خیلی هم زیده می شد ناشام هم بودن این که انگور زیاد کشتن مثل در ملایه و تبریه امه دون اینا نمیتونستن انگورشون نسخ کنید باقل میسن بخورن یه نقش هم میسن این سرکه که با خورن نیمون زایه میشه این ها را آبشو میگرفتن نیجوشوندن می شیره می بچه شیره سفید به شیره سفید از اون یعنی با بر کفگیر برش میابود با میدشن با علیز و سفید مثل روغنی که سفید روغن پیوانیی که سفید بشید و نزرم اون شیر یکی هم بهش می که شلقی و با سرکشیره می رفتن اجای سکنجوی می فیدهی سرکشیرها دو سنه و حلوات فضی و سرکشیر فضی توی شیران ارجون مثلا قند نشکرد ده برابر شیره قیمت شده حالا درست و شده یعنی شیره قیده که نمی شه اگران تگیشه به قبل آفاسده که دیست برابار انسان قندشتا قیمت دکونه شیرپز به محض اینکه این آبه انگور ریختی و فتیل و این جوش اومد این نجست تمام دیگ و ملاقب و دستگاه شیرپز و پیشبندی که و از که اگه تراشت رو کرد همین نجست اینا نجست هست تا وقتی که این آبه انگور بدوشه دو سال پفار شد یک سلسش کنند وقتی یک سلسش موند اون دستگاه شیر پاک میشه ملاقه که قدمی در انتقالش رو ده دید نیرون پاک میشه پیش بند چند پاک میشه همین پاک و این روش میگن سلسان شدن سلسان به هلفانون تفنیه عربی سنید دو سلس دول سانت یعنی دو سلسش بره دو سه باش، بره یک سپاشت این پاک اینم شود اینمار شیره انگور هست و باید شراف حنیفه که مذهبش مبتنی بر پیاف یعنی بر استدلال منطبی می گوه اینه که آب انگورو بگوشونه نه اشت اجس می شه و دو سپامش که رفت پاک طب شراب هم ها به انگوره نجست هم هم دو هم دو سویون شو شراب دوشیده کسی بخوره پاچه نجست هم هم هم هسته در شراب دوشیده چیه؟ این مشکلی چه؟ بله آه سالها من که این شراب دوشیده و در فارسی سه یکی و سه یکی خوردن توی راضی و توی سیمان علوچری سه یکی و سه یکی خر و سه یکی خوردن بیاد همون یعنی دستورش بری یه سرچ کن خب من رو ده تا همش یه کتابی هست به نام راحت الصدور راحت الصدور و آیه ابن علی ابن سلیمان راونگی محمد ابن علی ابن سلیمان راونگی راونگی راوند ده نیز در ایران از این اونجا هست و این اهل اونجا هست این کتاب رو هم در سال 599 نوشته این در تاریخ سلجوقیان اسمش از راحت و صدورت این تاریخ آل سلجوق چه افهم شده کتاب خیلی مهم نیان هست اجامبه یک فصل مفصل در باقی شبرنج داره که توابه از سار شهرنج این رو اونجا میگه و اینکه از اصلاد خیلی فضیمیت و از سال سون سال 99 نوسته شده این ببا که این کتاب رو برای پاتیان سلزوگی نوشته حالشا خب پول که داره قدرت داره همه چی داره میخواد خوش بگذارونه ولی خوب شهر جلوسون میگیره میگه شراب حرامه میگه شطرنج، بعد حالا این میخواد هم کلاف شهر نکنه هم هم بخوره یک چیزی داره ناصر فسرم یکی شعفعی گفت که شطرنج مباه هست مده شطرنج به اتفاق علمای اسلام حرامی دارن که قمار نیست درمی که گمر درش تصدف تصدف باید حاکم باشه شما تا تو که میریدید نمیتونید یک میاد یا شیش میاد کارتی که میکشید نمیتونید و اصل میاد یا ترداز میاد ولی شاتنج همه چیلو یک یک خاصه دو راه که کلاش پیتر کار کنه میواره با این حال گفتن که هرون ویش همینی که گفتن که این لحظه یعنی وقت است فقط چافه ای گفتن یا و لیله زاقه برای هاگر شدن و ماهر شدن جایی. با درجان حولی که حلال کردن شاتنجو شهر هر شدیم از این امامای ارزانه چون نصرفه چون شیعه و هر شدیم یه ایمی میداره صافعی گفت چه شطرنج مدا هست مدام کجمه بازید که جز راست نفر میده امام بو هنیشه به بر درباب شراب که زجوشیده به هردانه بهت بر تو حرام باقیشو نمیخونه که گفت دو تا دو تا عرب خارج میشه نمی‌کنه اما سرابش اون وحنیفه میگه که شراب نوشیده به خاطر هارون نبشه شعبی میگه او آقای راهب صدور آقای راوندی میگه پادشاه اگه می‌خوام شراب بخورم گناه نکنن خب شراب نوشیده بخورم هم بعدش خوبه میگه میده قشنگه، حالا آدم خوش میکنه، همسی گناه های روید. و بعد خانم مرعشی دستور ساختتی میشه آبا جوشده رو میده. جوانده حالا خدمت میخواهم ده. نه. بعد. بعدم میگه که، بعد چواهید متعدیدم میاره که فلان طوی، فلان بچه طول و کنم، فلان که هیچ فرح حاضر نمیده کچه سرین ترکه اولایی مکنه در مرض موت بود و عطبا آمدن و گفتن که این هیچ شال نداره شراب که شراط دخوارتا خوب بشه و این گفت من که نمی کنم اینکه که گفتن که شفا در شفا در, شفا در چیز حرام خلاف شهر نیست بنابراین من این کارو نمی کنم گفتن که نه اگر جوشیده باشه به مصحب عبد و حنیفه درست و خلا خیلی خوب اگه باشه اخو خور من اولی شما میدیفنیم بعد دستور میدیم دستورش درست نوع کامل افنی دارم میگه ده من آب انگور بگیریم 20 منم آب دریدیم توش اینجا سینم تا خیلیت منش بره <داره> درمانش <داره> آب انگوز بعد این درمانه بذاری تخمیل میشه خیلی هم زود که تخمیل می شه شعب خیلی خیلی سلیخویدان هست و هیچ اشکالی هم نده بنابراین مه جوشیده ای که درست میکردن چنین نبوده که الکل از دست بره خانم که شما الان هم می که اینا بشین زهره می و دستورش هم این بوده دو سال آب بهش اضافه می بعد می تا اون دو سلس آب بخار مایه صاحبش پسید حالا هم می زشتن تحقیش اینو می می پخته و در فرنگستون هر بهتری می کنن از هنگرو می شوند بعد کخنش می‌کنیم، این پورتو پورتو معمولا که معمولا شعابی که با از پورتوحال می‌کنزن در معموله پورتوحال و در کتاب رموزه همزه که از دوری صفحه یه شده که بعد که می‌خواستن بابا رو همزه رو دیو یه شعاب بودن گفت این شعاب رو پرتقال پورتوکال فرنگی و بلکشا پرتقال پورتوکال پرسته که خیلی خ تا داروی بیوشید میشه که میدن با و این که حالا بسیمت افریتیف در اول غذا میخورند و یک کمی الکلش بیش از شرابه و فند و بیش از شرابه و یه ذره قوی هست این میپخته اما حیروفان ملتبه عدوانی شد یه گزومی نهش که این کار رو بکنم همون آبه رو بخوار میکردن این دو دوش میره باید یه سلتیگهش رو چشمیش میبزن و هم و صاحب راحت سلور این دستور داد ما را از سرگردمی داره برای بر اینکه مسئله به من دراز من به فکر میمودم و هم وقتا کشمه بود نمیدن این صدرت ها حرفش بود و میخوندن توی حرفش اینجا ها بعد همهش بسیدن که یا سه یکی و سه یکی خوردن توی خواب اسلامه و توی منوچهری همونجور نونده که این که این چی میشه این که چیزی میشه مثلا قابل خوردن این که چیه به وقتی که کتاب ربسیدو رو خوندن بایدن که اون بسید را یه یک پس بر آخری کتاب برمان پس شراب پس برداری شراب من ا این حاضور و شهر دید دوستان اگه علاقه من به اطلاعات دوستاری بسن برگاه شراب و برگاه شهر به راحتی سوی رو عوام میباید در حال میه پختر و کسانی میخوردن که دلشون میخواست که شراب بخورن خلاف شهر هم نکنه. نکنن کوسه یه رشتن کوسه یه نمیشه ولی خب شکر سواری دوله دوله این درست میست ولی به هر جان. ما وقت میگه ظاهد خام که انکار مه رو جهد کند پخته گردد و نظر بر مه خام اندازد مه خام که ببینه دیدن آتش آبا انجورو تخصیل شنند و پخته هم داره اگه این شراب خام هستگران حریف پخته بزار و بهتر رو باز که خام جان که اون پخته شود هر خامی در چه ماه رمضان است یارب اسوعد چه 459 میگه اگرم شراب خام از تو پخته به هزار باره به به هزار پخته خام زن نهی عشق که اون پخته شد هر خامی گرچه ماه رمضان است آفت جام این همه اشاره به نهی و می دونم که اگه شما می رفید که اونبال کار عدد و عادی بعد عددی بعد بلاخره مثل من بر می خواهیم این مشکل که خب اون پخته چی چیه حالا الحمدلله یه ما از پیش پاتونیم گرفتونیم بردشتیم شما می کنید که پرتون رو بفرمید حلال طریق صحیح است. از که هر کنم درست کنم کنم کنم که انکار کار می جمع کنم پخته گرداد که نظر کار خام خم اندازد یک نسخه فقط دو توید داره بعد از این نسخه مرحوم قضبینی که داره که باده با محصول شهر ننوشیزن آد که خورد با سنگ به جامع اندازد و بعدش حافظه سرز کلح خورشید برار بختاتر قرعه دان ماه تمام اندازد از اینطوریه و این خانداری همون بیت هفته مختهه میگه باده پا به شهر ننوشی بخورد باده اتو. زنگ به جامعه عرض کنم که اینجا یک نسخه نسخه تا داره کخورت دازد. زنگ به جامعه دازد. به نظر من کخورت درست داره که این دو جمله را هم رد نداره. باده و با محطمت شرمن و جهات را بسیاره. چرا؟ که یه جامعه یک که هم خورد واضعت رو سنگ جامعه بگذاره این جامعه هم ربط شده بشه و این ربط شده که یه ربطی که خوراک واضعت رو به نظر من درستان نیم حالا برحال ارس کنم که محتفظ واضح شهر ایست قبلاً کارش انزا ارسان کارهای خلاف شهر بگه که برسی کنه از شرافروستان و شرافروزان رو بعد رسید این که به تیمانه ها و وزنه ها و این تعدید که گفتم که دولت برای این که تعلیم نکنه که تیمانه از بلود برای چیزای برای مواده خیلی گرانده ها مثل سلا و علمات و جواهر و همتار اینا که مقدار خیلی کمش عرضی بیاد بشه وزنه های شیعی میتاختن برای اینکه یارو نتونه تخلف کنه از کنار بس تسته اون بسابه تو وزنه های تلوزی رو بری ثابتانی که چاش رو یا پیمانه های چیزی رو پیمانه های تلوزی های می شاید. ولی اینا دولت نه این همون بسگاه محتصر می داده برای اینکه نتونه کنه. و این رس ها دوره پهلاوی اول بود که سنگاه تراجیوی توی سارن. سنگاه رو امر متعدشه کن. سنگاه یکیلوی و نیمکیلوی و برزنهای که دیده بودند no. که دیگه توی تهرون رو کار میوردن. اینا برزن یک قانونی که بودن خواستی کن. باید لیه که سنگ یا رو میگه توی تراجیو میگه حالا یک شوکه. آره اگه آدم خوبی بود یکی درست بود و این کمتروشی اینقدر بلای بگیرده که یک سوگه راجب کمتروشان بر اجازات اینه هست بایی لندل متخفیم متخف و یعنی دو تا سه یعنی یک که میگن که از همه جایی که بدتر و ماله ماله رو شبید میگه تا دیل حالا حالا چند کرد کنیم کیاب از توزی میده اللذین ازکال ورن ناته یستوگون و, و ازاقالی هم و هم گفت کرد کسانی که وقتی برزد مردم حیمانه میگیرن و وزمی کنن خیلی چرد سرخمون کشن. یعنی مثلا اگه ای اینه سرش هم کاملا پر می اگه خوش می خواسته بعضا خالو هم او برزنو هم که کهل می خواهند برای اونها یا بعض می برای اونها یک سرون زر کم می جره اینا جد جاشت اون شاهده اید این از خبین بوده سبگه ما عبر کردن چندسوروشی، جلوگیری از بنایه درکاره، کارهای دیگر خلاف شهر، انزا، احسام همه جورش کاره همه ها یک کتاب داریجی، یک که الهز... هستن، بکن احسام اون حسبه عربی و فای وشنینگ این کتاب ترجمه شده به فارسی زیر عنوان آئین شهر داد ترجمه دکتر جعفر شعر دوست بنده و هم دوره بنده با دوران دکتر معروف فارسی چون مدتی هم رئیس دانشکده گفتم علی دکتر جعفر شعر از او صدق فاضل دانشکده من الهار بگم دکتر شعار ترجمه دادم عالم القزره را و چاپ شد این اینو شهرداری بسیار مطالب جالبی که ایش هست ضمن این که بحث میخوانه که وضعاتی محتسب کیه بحث اجتماعی اون روزگار رو میگه که تغلبات چی بوده تغلب و نواد و قضایی که روشوزایی بوده کلت هایی که میگوزن چی بوده بعد مسائلی که اتفاق میخواده چی بوده نه هماره میگه که خیلی خیلی خیلی از دار اجتماعی این کتاب کتاب میگه من اصلا اون سه نشده بود که تابوک هم دارن که مهمی که تابوک است. آجات گیستون واسه اینو مصرف البته در ضمن تو مختصر بازی شهر ای بوده. اینا کارهای خلاف هم میکردن مردم آذیت میکردن مثلا باتو شهرداری الیپ و با من خودشون حرم می از مردم ایراد می همین کارو می و یک نفر اختصاصا در دیوان حافظ محروف شد به محتفظ و اون مبارزه محمد مزخفی پیدر شهر شد و اینجا جزه محافظه دادیم یکی دیم خودکو بی داد این خدمتون دا این, خدمت این مبارزه دو سه سال بیشتر رو کارند و سالی بغضی تحقیلی کرد و عذیاتیت که معروف شد اون خیل و اکثر جهاز حافظ متخصص دیگه اینجا شاید هم که اون البته حوجهاب چجوری بود که ما هر هم ولی بیشتر جهاز سفارش تو اینکه بنده درونی و متخصص که محتصد میتونید جامان خالی من نه اون رندم که شاهد رو ساخر کنم محتصد دانت من این کار حاجم دارد زیاد از این قبیل و اینا بیشترش گوشه و کناوت این دوارد حال چیز وضعیف احتساب وضعیف محتصدی خیلی اطلاعات جالبی را جب اون ریزه دار و برای اینکه که توجه اون چه قبر این تخلق قدیمیه باید قدمت اون بگم یه روزی اون دوست راجی من تو مجلس کار میتردم برای که تحصیبت هم داشته ادامه دیگه برای اون بزران زندگی و حضرت مانکسی مجلس کار میترد من اون دوست راجی وزیر بهتروند. و یه رو شکر در مجلس سنان یک ستخند را میکرد برابای تغلبات و مواد و غذایی و به تفصیل سمان که چه جیسید می‌کنن بر گوست چه چه، چه، چه، یک تا خیلی پاست، از جمله گفتش که گاب رو این دیگه بعد خشکش میکنن باز زعفرون رنگش میکنن یعنی میمیزن توها به زعفرون به رنگ زعفرون دارم یعنی کاتی زعفرون یعنی یون از خالدوشت توفته رون گوه برود رو. رونت یک از خالز زعفرون به مردم نیست میشنن و برای هم نداره یعنی تمیز و اقل رو گروه شوی نداره دوشت سالها داد. بنده مشکول مطالعه دیوان خاقانی بودم. خاقانی شروعانی افتال دین با بوده فعلیم. خاقانی افتال شیستت مرده. یعنی هشتفاد و شنزده سال خودید و هشتفاد و بر سال زندگیش تو دیوانش پرخوردن به این میگه هر جا که نوگلیست خفتی هم قویم او آری به گوشت گاف با رو که سال مثلا سال پنجا دوست راژیم کنم این و کار محتسبی هم که نروی لازم داشتیم این که با نفسر شهر نمیشه حبه بخورد قاطعه تو رو میخورد چون... چون حقیقتا اعتقاد بگیم من ولی بعدا هم تو میشکنه. نرک خوروانی نرکسن چیکار آسان داره. در حیران تو منجور افراد شمیدی که بگه خوش در در این سو نظر برمیه پاملگازه این هم بله بله خام، اینه خام خام که به نمیشه بیشتر این فضل... چیزی دیگه، مثال تربوطه به ده... یعنی یعنی معنی چیز که خط رفا با یا او به سوی که این طوفان به منوه هم ساعتید کنم که من ایدور میخونم بعد هم میزاریم بحثشو برای بعد ساعت دارد. این قضل رو خاجف چند سفر شده یه بار دیگر سفر که خیلی هم دلخور شده از معروف بوده به زندان سکندر برای اینکه زفتان اسکندر برای اونجا زندانی ساخته بود و شیراز و فارس هم معروف به ملک سلیمان برای اینکه جمشید و سلیمان در افثانه های ما به هم آمشته شده اینو بارها دستم و چون تخت جمشید اون پس پلیس و اینا بناهای پاچان اخان جیفتک در این مال جمشیده و تخت جمشید بر فارسه این هستی سلیمان. و میگه دلم از بحشت زنده هم سکن و به سلیمان دورم میگه یکی هم که به جزیره هورموز. سواهل عرض که خلیج فارس و تنگه لبه تنگه تنگه هرموز چیز هرموز هم هستی ربی هرموز نداره هورموز و ور برج با هرمز با سلطنها پر بکنه دو و یه که سلطان بود که حساس و شعری او شعری بود صاحب سر رزوالله ببیارد اصلاح و سلطان به شعرها رفته کنند، شعرهای که کارای کردند نه پسندید گفتم پردم که شاهر او از شمس دین محمد با و جوانی سازه تا در میدان سخنوالی بزشته و به اون یه صدقه پسنده رو میدن و خواهش اقوامش می و خواهش اون قضال درسه درسه اقوی حدویس سرگول و لالون اون بعد با سلاسه اقویس با. وقتی به سر پادچه هم که بیاد به این که گفتن به عوضش که بیاد به هم یک به بنگاه تو خاجه چیز تو هرنوز بلی حاضر نمیشه سوار بشه ای غاب داره به اونجا خود گفتیم تهمتنی بوده خرمدادای هرنوز در اونجا که خود خودی هم به خاجه پهبد میکنه به, می به خود اولادت به داشته برحال خاجه رو اونجا اگاه و بعد دوباره برمیزا برشتید و که این غزل رو و اشاراتی به این ماجره هست بره حال غزل من میخونم میخونم که با هم به جهان یک سر نمیعذب به نهی بفروز که الگنه این دهتر نمیعذر. به کوی میفروشانش به جامی برمی گیرند. وی سجاده ی تفاید یک ساخر نمی ازورد. وقیب هم سردنش از این باب رفت بردار. سر نه را که خواهد برمی ازورد. که دین جم برندر دست اما بس آسان این همون در فرقن وریاه و بیه که این توفن به صد که رونگ خود به که شابیه به همگیری خن ورشتر نمیازد از دنیا یک به منظر یہ جو سر نمی اصول چیز مقام رزا. اقام رضا به فارسیش میشه خوشنگی عبارت است از, از این که آدم که اون اونچه اون چه, اون چه میرسد بر او کنه از طرف حضات حق و به او چه بد حالا البته گفتن که باید تسلیم هم باشه یعنی اگر شادی زیادی خود نکنه و یا بوارش نداره کسان میگه وقتی به یه صنعتی میرسن به یه منصبی میرسن یکی شمر جلو دارستم نیست که از اون که هیچی رو, رو, رو, رو اصلا گفتن چون نمیشناسن نمید اگرم قد وقتی چیزی به ساوش نمید بازم رو نبازی و در هر حال آرامش، لاحصایش و آرامش خودش یکی از مسائل و اساسی و کنید برخواد تربیت میخواد کنید یعنی آدم باید خودش رو عبد که کم فرصت نباشید به ایسته و بر برابر مسائل صبر کنید گفتن بر برابر شادی ها کم زرفیات نباشه خودش رو نه. No.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 از از از ها یه از و افتاد بعد این راپ دیدن شو هفیلی که این دیدن تو راگه من من تو بعد مدبت های و هر روید از اول وقت آخر بخشیر اون درخ چنار رو ده جلو درد بارو دوست من پنزراش تهم پنجرو وقت فرقشم زیر اون درخ هستی بودن خود خود کدون دارن؟ تو موزم کد درخ اون جنگیگیر نه و دینا میخواستیم الان اینا اینا خلاف مرد نیست کسی که یک چون داشته باشه که یک یک ملتب خلصفی هست با یونان قدیم و اسم فرنگیش هست هم میترک کنه هست اسم هست یعنی فلاسفه رواقی اینه اونا در اونا برست میخونم حسن نیچه همه چیز شابیه اینه برزر رواقهای اونا نگذشون چیز میشود برد اینا نگم فلاسفه رواقی اینا که هیچ چیز نباید و آرانه شکل رو به هم من نه ایچ حادثه و نه ایچ خوبی و برای این پر تنبیم دو از این آدم خیلی معروفن. دو تا فیلتروف از این مرکس ها یکی فیلتروف هست که نانون مرکوس اوریلیوست. که این از خیلی قدیم یه پندنامهی داره که این پندنامه شو پارسی ترجمه شدید. و من تو بازار علا بیشازی که را را یه سوالی بید که چطورا احوال بینو اوندو من حالا سوسکه و این ارومی که تو تابع کتیل کتیلیو برابری و یکی از جان کنجه الان زود برنامه مارکوس این که تو تابع جدیدی داری خب حالا کتیل میدم تابعی می‌کنم مارکوس اوریجوس اسمش یه با imperator زنده و اوکوسو یکی این بو یکی دیگه یه یک بنده زرخریدی بود که اونم از کشوران این مثلا برن اوپیس اتیس این پرده بود پرده زرخریدی بود و که ارباقش پای این رو دسته چکنجاش می کهد پای این که پیچی قیبی و خسارده و این هم دوست کارکت کشسته و اون این رو بعد که این فشار کرد گفت اگر یه ضرور بستا خساردی هم و هم ارامه این فکر که اگه این این الان به هوا را سنید یه سره دوشتر کشان به یک که است گفت نوز کنم با همین آرامه قیلت می کنند هم روی میکنند داره این بار این ها واقعا دیگه که آدم بتونه عرامشو عرامشو فتحه فتحه و خودشو حس بکنه و آرامه شو آرامه شو یعنی بتونه بر مقابل محساور و مقاول دمی با به سر بودن جهان یه سر جهان یه ریشه درمی جی جی یعنی زندگی همین جی زی زی از زیستن. الان در فاکستان یکسی صدا میکنی میگه هست میگه جی یعنی جا جی میگه یعنی،, یعنی زندگی با در جی. جی و در عبستایی همین هست گی جه و جه و این جه شدید جه هم جهان یعنی جا زندگی علفونونش علفونونم مکانی علفونونش مکانی یعنی زندگی یعنی جای زندگی, علو علو علو علو زندگی. جای زندگی. از وزاره درست سامانی هست که نانا ابو عبدالله البته یه شمیه مجموله جه هم که هنم باید هم یعنی جایی هم که ولی و و جه جهان یعنی و با جهان بهتر نمی به نهی بهتریش از این بهتر نمی خیلی خیلی حفظ قرقه شو و سعجاده شو و اولا از ذر به ارزش گفتن تو نجاسات هستن، یعنی شراب، نه کسی می کنیم اگه کسی می خره، اون چون، چون باید صاحب اون شراب هم، قابل رو تنهلوب است من رو پروشنده است، من رو پروشنده است، رو بنابراین اگه انظار شرعی به نه، یعنی فروختان به هیچ اما از زندگی اجتماعی، نه راستی و درستی رو راست به همیشه چیزه ا حفظ میگه اینا کنیم اونا وسائل درویی و خود میگه خیرده رو با جای است که به نهی گفت و سجاده اونه و همسال اینا اینا و و تلک دادن به و راست میبنم و ظاهره واقعی اینی که در هر دو صورت گفتن با حفظ حسابش درست میگه به نایی می بتونیش دلگان ما که از این بهتر من یکی که میگه عرضه شد این که این درق نصیبه ریاکاری درویی این هست درق رنی خرقه هست راجب خرقه صحبت کردن یا نکردن سوطیه ی جامعه پشمین داشتن این روی می برای روی هم بهشون میگم صوفی یعنی پشت پس صوفی یعنی پشمینه پش. به خود حافظم هم پشمین پشمین پشمین داره پشمینه از اشمشیده اصلا از و هم زیده تا تا تا روش کنه پس برد میرسه پشمینه پش همون سوفیه. بعد این رو از بزرگتر دو تا از تیر به مریض میرسید و همینجو ادمو پیدا میشد. بنابراین هر غذایی که اوناتر بود و قوی‌تر بود و وابسته دارتر بود ارزش معنوییش زیادتر. اینو که خیلی جوان یه بار خونم لام ما نمی یعنی رنگارن وو یعنی بافته ها رو رنگو مختلفش زدن. پارا با ولی، ولی گیر، این و باقی این خیرگه رو پاره میکردن حفظ میگه بسوزونش خیرگه رو به مراد و از برسفن از یادتاری ارتباطی و این خیرگه شهر سوتیان میده این که های میگوشین این چیز کنی این مشان نسید با سوتیان افاله و البته فکرش فکر سوتیان هست باید که مختلف میتنید و اینا محترم و چون اكو ن اكو انسان ما دمبل صداقت و, ایسار و از خود و و خدمت و ولی در اهل نه که به می isEqual genomen از و آب ده به یه میتونش خب من اگه میام بد ولی نمی‌خرن به یک چه همه به خون میفروشانش به جامی بر نمیگیرن. بر نمیگیره میور نمی و برداشتن به معنی همون صدا هم رو هست با خود شنگید. که میگه این رو بردار مثلا این هم بگیرد. یا این رو بردار. چه تا رو بردار مثلا بردار یعنی بخند. این برمیگیرند یعنی قبول نمی کنند به کونگ میکنشانش یعنی به آن که به جا جا قبول نمی کنند زهی سجاقه به خفا به معنی خوش چقدر خوب ولی اینجا برای نشخنگ و تنازخور بکار رسیم. ده با از این سجاده این تنگوه هست. تو یک ساخر نمیاده. سجاده که میدونید اون چیزی بوده که زیر پاشوند. چون جایگاه من از گذار باید تاگید. و با معمولاً ترشی که بیه توی اتاق ممکنه پک نباشو از بچگاه رو که حتما بچه یک و به هر حال احتیاط داره قول احتیاط داره احتیاط داره. یعنی حتما پک ممکن نجس و چون جایگان ها گذار باید پک یه چیزی که مطمئن بودن که نجس نیست می زیر پاسون و این رو مثل یه خالیچه بوچید درست میکردم که روشم یه نقش و نحسوسی داشت شبیه محراب یا با بیدید سجابه زهی و یک سافر نمیاردن رقیبم سبانشها کرد یعنی رقیب مرا سبانشها کرد چند بار اینجا گفتم که رقیب الان منش اول شده الان روی به کسی که با آدم در یک و همکاری می و مسابقه می به کار مثلا در می گوی این به منه. یعنی مثلا دو, دو در این یک دفتاری می گوی این به منه. یعنی در تجارات جواب مثلا با می جلو معنی همچش می‌گیره. بر قدیم این نبوده رقیب به این مگهدان و این مراقب رقیب تو حافظ سعدی همین مرافق و مشروب که سر خونکو و دختر زیبا حتمان یه مگهدانی دنبالش بوده که اینو بگونش نزنن ازباب رو برش نکنن باش حرف نزنن وازه بس باشن حسیب بهش نرسونن چون بعضی رو بودن که مثل حافظم یه برو باونی شدیم یه شدن گولن یا, یا زخی توزنن یا, یا کسی دنبال شده اون کسی که دنبال شاهد دنبال آبان خوبی و زیبا بیده میشه که فرحافظ هیچ معنی دیگه نداره من این همکار اصلا نیسته فرحافظ میگه رقیبم سرزنش شوفه از باب رخ برکار این کرد که صورت از این در برد بردار یعنی آن برو ها کرد این باب رخ برکار رخ برکار بیدن یعنی رو از این بار برو چه اختار این سر که خاک نمیاد. نمیاب کن. سرد پوز به رئیس یعنی همه وابان تو که سرد مغز سر ما عرضی شدیم خاکگارا نداره. چی شده که این سر ما با همگه خاکگاره عشقا نمیاد. بعد اشاره میکنه به با... قصه سفرش به هرموش چند که از سکوه تاج سلطانی در بیشتر نسخه ها و در ذهن منم همینطوره سکوه تاج سلطانی که بین جمع در خود برجم خودم هره میخوانداریم ستا, و ستا, و, ستا, و, ستا و ستا نه تا نسخه داره از این نه تا یعنی اکثریت نصحا هم گفته در اون تا دوزو خاندرین این دوست نداشته که اون برای دیر زیرو حالان علاقه باب نیست الان برای لیوان نمیده ولی قدیم میگفتن اون رو برای بیجان به کار خیلی هم به کار میبردن همیشه این توی حافظ یه مخلر از غیر زیرو جسم بیجان رو او گفته همه جا رو چه عیساریت بیشه دوست و توجه رو هم ولی تو ذهن من دروست و این سبت اون روزگاه ده سبت اون روزگاه و حتی به هر مثلا خیروبین کنه از جنگ جنگ تخانز جغد جنگ مرخوا که تا عبد مریده با مرده با با تا و شکسته پر ای ای. بعد پرایده این که با دیگه کلانگسان دجه پرند، بنگریم دجه پرنده آدم های به درگ بمبرکانه کلانگسان دجه پرنده بنگریم به هندسی کتون به خوشنماگ اون چه پاور پاور عبر کتکنت همین تگرگ مر عبر مرگ زاگ اون هزاگ دجه هربنی دروت بهد عجل دوان چه جنجا از برای این و هست تا دورا ادامه داشته ولی خانداری همه جا رو تا سکوه که بین جان برند و برگست بلان گردشان. اما به تحقیق سامن و از اطلا بعد چه تو میدونم از سنو و افیر هر جا میرون همه تحرزی می کن دره ماشی ماشی تحرزی نه همی خواهد چند میخواهد غذا میخواهد کار داره دستیر میده فورا همه میدونم اقزام کن یک دنگاهی امتظره این خورمت که کنید بودم درسی پاک شد. ولی که نه. اولاً هر آدم دیگری در مراز خط هست. یعنی همه میخوام جان دارش با که تو که توی کولستونی قصده یک که یک بود و همه هم بشه گدایی کاردوند و دوسته و یه لخه از یه گرفته یکی پادچه اینقدر این یه روزی پادچه یک شهر بود و بست بود که از هم میرسه و دیگه اونسه پهنه خورده از این متحقیم رو هر سمی که هر میبرن و همونش میبرن و خیلعت تنش میخورن و این ساری سعدی میگه گلش میگه مدردی کداشت یک دوستی عشباییش اومد اومد شهر و اداره بیگه ایش شدید فهم روزگاه بیتگذانده بیدن نه خودید فعجل وقرم هیست مثلا به زاشب ای خواهی ها وقتی سرواز ساده بیدو یا گروزم میدیدی دیگه ها مثلا خواهی ها تو خواهی بیدو میشونم موه، خداقال و خداقال و اینها میزه بیگی سو همسال اینها باشت ماشید هم که بعد هم بیدو به گفت که رفت اینو بعد اینم خیلی و بعد اون روز میگه که خیلی تبرید بشکه خوال <سؤال> هم با خدا رو شد وقتی داری که خب از آن روی بببختی و جای تحقیق کنید جای تنمه همی داشتن و امروز اندوم جهن هر آدمی که که این نمیتا اشکالی را از توی دیاد چیز کرا همه و نرهون روی یادشتای نرهون علم تو فاهمه اون غازوهی که گفتنشه می کنه که بلاخران اینجا سوی شد ولی این جای بلند می شده، با هلی کتر یا به با هوابنیان، برسنگ ها می رفت نبینه بارون هاده نه؟ در وقتی بارون می خدا جمعه رو این بده، این حال، یعنی خود چه مسئول اومدن یه بارون تو هم در می بینید. جا الان می رفت و اینا, را اینا را گفته می و بعد از من و این را سلطل تهلاوی کسی هم دوار اینکه باجی این که جان بر این ایده ایم خود می آم دلچسی کلا هم می این خطرم می کنم تینیسون هم که و می کرد و راه خودونا ترف ایران و گفتون دو وقت خبشن تمام تیمی یکی از افسران خلاص اروپایی بوده. اما از اسلام، که اسلامی این گست توی ماجره ها بوده تا قبل عجیل تا دیگرون تا در همه این روزگاران فکرنم بگید یه روزی بکشن قرار هم بگه بکشن، ارون فاطرانم یه رو گست رو میشه که این سید رو خوشنم نا با خون صابت رویستن، سو کسی که میخواد این پاو رو کنه، خاشن سب کسی، نمیخواد به دریادر منافق می شنا را می شنا را وگر خواهی از خطر خطر زیرا کسود ده چهر بر نبن باید از بنابرای کسی از کتیف کریم، ریستو می کنم، یکی هم مثل <سؤال> بنده اونس خواهد آفد، مزاجی سنتجاه موتمایل نبیده، میگه خیلی خیلی سلطانی خیلی اولیو، خیلی هم گل اما ارزش این سر سرش رو باسه حالا مطلب یه که دعوتش گردن تو به بنگال کشکی سوالی آسان بویه یعنی آرومی ساگی میگه به بویه انتشایی در حرم بیاساوند حرم یعنی تو به بویه انتشایی در حرم بیاساوند هزار بابویه فعلت تگر تکل عبویه به بویه یعنی به گوه اقوال، خانه بابوه، بحر و بیسود، خب دو ببرو دیت خوی بلات این اینجا به در در گوهر هم جانه موروارید و موروارید رو از دریافت برمودن قدیم همینجور که کشف رو خوند زپنی ها با این با این تجمیزیات رو کردن و این که نفسش بدونه کسه بدون چهتر و چیزن بدون چی و نفس خود که نفسها یعریا یون اصطبای خرچی بس میشه مرخ بالا گو باکو پر که تو و الچاو و طارون من اباب به هوفوت بکنم که باوا خوبه و با تو طلب قطه بار باز نقص طلب و اینا چار صاحبان تو بلاتبابان وو وو وو وو وو وو این وو وو وو وو وو وو وو وو وو وو وو وو وو وو وو و اتفاقا اشتباه به معنی چیزی رو شبیه چیزی گرفتن اصل کلمه طلب کردنه و در ایرانم همین بوده جدال صحبی و مطبعه هستش که گفتن مزمتی من رو طبان دارم. گفتم مظمت اینان بابا مادر تو یه جنگ داشت کردیم کرد کردیم یه می بنارزار شما دهی که تخنی تاب وقت ولو تخنی درخت انا هست ها بلا تا درخت دوستی که بلاد هلی رفت درخت نه تخنی زیدان تخنی مارک چه حالا اونو پیستانگاه خب تخن خب چه چه حالا اون بعد که از درخ به موسیقی برداد ها یه رفتون بعض می کاشد اندران که بعض رو نمی کارن اینه هفشانگه بعض ولی جندانه نه کار رو باید امید ولی یه که بیشه شن و بیشه شنگ اون اینجا و ba بازد. بازد افتسانگانی من کارا نستم از این بازد نیستم. تو تو تا در افتید بازدن. حالا افتید بازد نیستم. سیوه چشمان طریب جنگ داشت. من خطا کارگیم خوبونده. بعدش اگه خوشت نمیمت شعر خاجاران خودتیم نمیخونده. من از این که توخ <تصفح> میگاشتیم دو دو عویتی افتید. یک از اولاج هر خواننده ای که میله خودش دو جو واقعه بودند باز از می ده حالا این یک اینجا اون چه <سؤال> از این مامه چیز شد؟ این از یک کرک well. در اومده و از یک اونم ولی الان من به سرسدهش کار نهارم که این تا این خدا و تو به کاسه از آشکه اختب شدیم میگه قلب کردیم تو میگی و بعد خلط کردن با هوا از بعض این بس آسان این اون در و عبی عبدی اسوب خلاف گفتند که این از دنجون مراد مردد تو را هم دو به این خود و نشتاهاد خود ایسان داد دو با اینکه تر این صفت مقایسه ایه صفت خود صفت این خوده اگر این رو یکی این اگر به افراد جنسش مقایست کنید این سکت آبید میگیم این بهترینه که باشم مقایست تا اگر رفرزوارم العرب یعنی این چیز بردید و ارسای بگرد اگر نخطر باشد سفران شکرون این زبط شد از این زبط شد بهتره یک چیو در این کنا را وکنون این از این بدینه این اگر رفرزوارم العرب جام باشد سفران شد دیگه که بعد این از که و اما بالین نداره بالین صفت خودش یا هر میریم و از آبی بگیمی که تر فرحه کم از آبی اونه هستی که فرحه آبی چرا طبیلی است که معشور وقتی جلبه می کنه برای جهانگیریه ای که این و که چیزی و همه عوض این درستی این رو بعد از دفتر رو البته همه که اما اگر ما زیادی بایل زحمت آدم چایم خدار آدم میگیم که از اطراف که که با نسبت اون که رو مثلا که توفتره نتو با اونه کنید علاقا و بعد هر آسیادون اولید و با که این من که بازگو. دار و سر و اسن گفتن هر طول سکوت من به واسطه باب دوستان گفتن که مثلا دوستای 20 ساله انسان خوب حمزه فقط یه نگاهی که دیدی لختش تو یارو من فقط ماجوبا فقطه هنوزمنده جای نگاه در بابا چند تا هم و رو تو صوریا با صفا هوا با من فوتبالو با بگوها که با اینکه فصیده آ 40000و ان با که این استاد ما این دکترو اینجوری که لطفا بگوییم که باعث می‌شود که باند سراغ برویم و باعث رو باعث می‌شود که باعث می‌شود که باعث می‌شود که باعث می‌شود این هست که اما این افتاد این هم میشه باید این همینه دو هم دو که و جهانگیری هاون فهم ورا باید multim gir شام می یک توgasیم بازید ون بosoگ زخنا خطبیناد به گود بم امن که چیک عربه ها توسود باقی د destroys گروه خطبیناد افنش معفل اون را در بناید طالب این ها توگج ؟ طالب اون راید کنی کام